اعوذ بالله السمی العلیم من الشیطان الرلین الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و سلام علی نبینا و آله تاهرین خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام داریم روز به خیل عرض میکنیم ان که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل و برخوردار هستید و ان که به لطف و عنایت الهی از هر گونه گزند و بلایی هم بدور مانید بحث ما در بلاغت کنایه این جا رسید که عبارت ایشون اینه دقت کنید در بحث بلاغت کنایه پاراگراف پایین صفحه و منخواس سل من منمنز بعضی است یعنی یکی دیگه از ویژگی‌های کنایه هایی برای کنایه شمار مثل اینکه گفت کنایه مطلب رو بیان میکنه ولی در ضمن اون دلیل و برهان هم میاره و مثل اینکه گفتش که کنایه معانی و مفاهیم رو به شکل محسوس در اختیار شما قرار میده یعنی جوری که انگار شما اون رو میبینید معانی و مفاهیم رو کاملا به شکل تصویری و مخصوص در اختیار شما قرار. این دوتا تا بیجگی رو گفت ویژگی سوم میگه و من کنایت الله ها تومدکن و که من تشفی قلتک من خسمک من غیر تجر لهو له و دون ان تختش و وجهل عدم از ویژگی های کنایه اینه انها تو که این کنایه به تو قدرت میده تو یعنی به تو مکنت میده به تو قدرت میده من تشوی بللت که من خسمک به اینکه تو سوز دلت رو اون عقده دلت رو، اون خشم خودت رو خالی کنی، شفا بدی از طرف مقابل خودت، من خصم از اون کسی که طرف مقابل تو باش دشمنی داری، دقت دلیل تو خوب خالی کنی به تو این قدرت میده من غیر ان تجعل له سبیلا بدون اینکه یه راهی برای او بذاری که به تو حمله کنی و دون ان تختش وجل ادب و بدون اینکه که خدشدار کنی شکل ادب رو ادب رو زیر پا گذاشته باشیم اچه؟ پس کنایه به ما این قدرت و توان رو میده که بتونیم دقدلی خودمون رو از طرف مقابل خودمون دقدلی من رو, رو سر او خالی کنیم حسابی او رو بکوبیم بدون اینکه اون بتونه اعتراض کنه، بدون اینکه اون بتونه به طرف ما حمله ای بکنه و از طرف دیگه هر چی دهنمون رسیده بهش گفتیم بدون اینکه راه ادب و معدب بودن رو زیر پا گذاشتو. عجب این کدومه؟ این کنایه تعریزیه کنایه که شما از عرز گوشه وارد میشید. گاهی اوقات دیدید توی یه مجلسی مثلا نشستید؟ یک نفری یک نفر دیگری رو بهش کنایه های تعریزی گوشه میزنه. خدا رو شکر. که مادر ما اینطوری نبود، خدا رو شو که خواهر ما اینطوری نبود، خدا رو شو که پدر ما اینطوری نبود، و فلان از اریم میگه، این طرف مقابل میفهمه داره به این میگه یه اشکالاتی داره به اون وارد میکنه، هی سرخ میشه، دربز میشه، ها؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، هر چی لعنتش میاده، بعد بیرام میگه، اون هیچ کاری نمیتونه بکنه، چرا؟ چون اگه بگه منظورت مادر منه منظورت پدر منه منظورت خواهر منه اینطور نظرت این بود مقصود دیم تا اینو بگه میگه نه اگه مادرت اینطوریه میخواد من نمیدونستم عجب هیچ کار نمیتونه نمیتونه اگه بعد میده بگه نه منظورتون این بود یا معلوم شد تو از اولم به من برد بودی. تو همیشه تو فکرت اشتباه میکنی تو گلن تو فکرت غلطه تو اینطوریه تو همیشه بد فکر میکنی کمان بد هیچ کاری تو میکنی. و در این حال بدترین حرفات هم میزنه ادب رو هم زیر پا نمیگذاره اونها رو متهم به دزدی متهم بی, بی افتی و فلان و فلان میکنه جوری که اگر اومده بود به طور سریح اونها رو بهشون شده بود عدب رو زیر پا گذاشته ولی همونها رو گفته اما عدب رو زیر پا نگذاشته میگه این طوره خب و من خواست کنایتا نه نها تومکنو که ان تشفی یا قلت که من خسمک من غیر انتج له سبیلا و دون انتختشا و چلحته حالا آیا کنایه به این شکل که به کار میره و طرف رو خلصلاح میکنه جوری که نمیتونه اعتراض کنه اگه اعتراض کنه به میشه شما حتی بر چیزها رو بهش گفتید ادب رو هم زیر پا نگذاشتید این کنایه چطوره به این شکل تعریزی گفتن خب این دو جوره یه موقع تعریض زدن خوبه مثل اینکه یک نفر ایست آدم آدم ازش یکم دلخوره به شکل تعریزی بهش مطالب رو میگه آن جوری که هم اون متوجه بشه هم ادب زیر پا گذاشته نشه همین که اگه فردا همدیگه رو دیدیم گفتش که منظور شما این بدونجا گفتی بگه نه من همینطوری یه گلهی کردیم یه مطلبی من منظورم شما نبود بلا مطلب جوش بخوره سریح بهش اما یه موقع هم هست نه شما طرف مقابلت رو به بدترین چیز متهم کردی و همه چی رو گفتی او رو تو گوشه قرار دادی جوری که نمیتونه حمله کنه مجبوره خوش از مجلس بره بیرون قرمز میشه سرخ میشه میره بیرون اونم چینه شما رو به دل میگیره جوری دیگه دفعه و جبران بکنه یه جای دیگه بیاد و حمله کنه در هر حال میگه خواست کنایه تعریزی یکیش همین. و من خواسته که نایته ان لها تو مکنو من ان, ان تشفیه قلت که من خسمک قلت یعنی اون دقو دلی اون به خودمون اون سوز دلی که شما دارید اون رو شفا بدید از طرف مقابل خودتون، من غیر ان تجعله لخو سبیلا و دون ان تختشم وجهل عدب بدونه که ادب رو زیر پا گذاشته باشی و هازن نویوس هم ما به تحریز اینو بهش میگن کنایه تحریزی و مثالهو قول المتنبی مثالش گفته آقای متنبیست فی قصیدت در یک بسیده که یم دخو به ها کافوره که کافور اخشیدی پادشاه مصر رو داشته مات میکرده و یا عرض رو به سایف دولته و گوشه میزده به سیف دوله کافور در مصر داره مد میکنه ما، توسط مد میشه توسط آقای متنبی اما چطور شد متنبی پیش کافور رفت در مصر متنبی دوست سیف بود و خیلی هم دوستش داشت از سمیم دل و براش شعر میگفت و تا آخر هم در کنار سیف بود به این برهی که شکراب شد و رفت مصر یه ادهی پیدا شدند سیف و رو به اصلا تحریک کردند سیف و با متنبی برخورد کرد برخورد کرد و در یک مجلسی دواتی رو بلند کرد و به سر متنبی کوید متنبی هم حتی اون, تو اون مجلس کنید اگر شکستن سر من باعث خوشحالی شما و باعث سرور شما میشه من به اون هم راضی هم خیلی درخور از مجلس سیفت دوله آمد بیرون ولی خب دیگه باید با شعر خودش زندگی کنه دیگه مجبور شد و رفت پیش کافور اخشید موقعی که پیش سیفت دوله بود چون سیفت رو دوست داشت کافور رو خیلی سریح مورد حمله قرار می داد. چون مقابل سیف دوله بود دیگه مصر ولی وقتی رفته بود پیش کافور کافور رو مات میکرد مدش پول بود خیلی همچین آبکیه ولی در عین حال سیف رو تعریض بهش میکرد گوشه بهش میزد سریح سیف و را مذمت و حجب نمیکرد برای همین وقتی که دوباره برگشت پیش سیف الدوله بهش گفت اینها رو شما در مورد ممنوع گفتیم نه ما به کلی رو گفته بودیم اصلا منظور من شما نبود و نمی شدم ثابت بکنیم ولی معلوم است که قصد سیف الدوله است. حالا نگاه کنید ببینید چی میگه میگه و مثال هو قول المتنبیف یه قصیدت یمده و به ها و یعرض به سیف الدوله میگه رحل تو میگه تو من بد کردی رحل تو کوچ کردم من یعنی از طلب رفتم رفتم به مصر رحل تو و کم باکن و عجفان شادنی علیه و کم باکن و عجفان زیخنی میگه من رفتم ولی چه بسیار گریه کنندگانی که به اجفان شادن علیه گریه کن بودند با چشمان اجفان جمع جفن یعنی پرک گریه کن هایی که با چشمان شادن آهو گریه میکردن بر من چه بسیار کسانی که با چشمان آهویی با چشمان آهو پشت من گریه میکردن یعنی برای افساد من و کم این کما کم خبریه برای تکسیره یعنی چه بسیار و کم باکن به ازفان زیغمی و چه بسیار کسانی که پشت و من گریه میکردن با چشم شیر درست شد؟ من رفتم منظور شیر یعنی من رفتم اما اینطور نبود که مردم بگن خدا رو شکره شرزش کم شد نه من رفتم از حلب اما محبوب بودم تعداد زیادی پشت سر من با چشمانی که چشم آهو بود گریه میکردند و تعداد زیادی هم پشت سر من با چشمانی که چشم شیر بود گریه میکردند منظورش از کسانی که با چشم آهو گریه میکردن کنای موصوفه یعنی زنان و کسانی که با چشم شیر گریه میکردن یعنی مردان میگه من رفتم و چه بسیار مردان و زنانی که پشت سر من گریه میکردن یعنی من محقوب بودم اردو کنایه از موصوله از شادن ولد و غزال شادن بچه ی آهوست که چشمار بسیار زیبایی داره بود و زیغم علا اصد اراد بلباکی به شادنه ال زن زیباروی و باکی به با ازفان زیغم و کسی که با چشمان شیر گریه میکنه منظور ار رجلش منظورش مرد شجاع یقول و کم من نسائن و رجالن بکاو چه بسیار مردان و زنانی که چه بسیار زنان و مردانی که بکاو علا فراقی گریه کردند بر فراغ من و جز اول ارتحالی و بیتابی کردند تو سر خودشون زدن به خاطر رفتن من خب اینجا دو تکناهی موصوف بود حالا دقت. و ما پس گفتش من رفتم ولی محبوب رفتم همه دوستم هم داشتن و مرد و زن پشت سر من گریه میکرد و ما ربطل قرطل مکانو مکانهو به عجز امن رب حسامل مسم میمیم خب مرد و زن پشت سر من گریه میکردن معمولا زنان گریه شون بیشتر است نسبت به مردان زنان تحریک و عاطفه اونها که تحریک بشه خیلی بیشتره و قاعدتا ایشون هم که اول گفتش که و کم باکن به عجفان شادنی زنا رو گفت بعد توی این بیت میگه فکر نکنید که زنها جزعناکتر و بیتابتر بودند تو رفتن من از مردها یعنی زنها بیشتر از مردا گریه میکردن میگه ها گریه کنتر بیتابتر از مردان نبودند یعنی چی یعنی یا هر دو به طور مساوی بودند یا حتی مردها پشت سر من بگید بیشتر از زن ها گریه میکرد. تو, تو اول گفت مرد و زن پشت سرم گریه میکردن تو دومی میگه ها گریه کنتر بگید نبودند خب مفهومش چیه یعنی یا مرد و زن مساوی گریه میکردن یا حتی بگیم مردها بیشتر از زنها پشت سر من گریه میکردن باز محبولیت خودش و ما ربت القرد ربه یعنی صاحبه القرد یعنی گوشواره میگه گوشوارهدار که الملیه مکانو بود اون گوشوارهداری که گوشواره ای که الملیح نمکین است مکان اون گوشواره یعنی گوش زیباست یعنی گوشوارهدار زیبا وقتی میگه گوشش زیباست میگه صاحب گوشواره ای که اون گوشواره جاش خیلی قشنگه یعنی اون گوش خیلی زیباست و وقتی گوش زیباست خود طرف زیباتر میگه صاحب گوشواره که گوش زیبا دارد این نبود به عجزه این با بای زایده است خبر مای مشبرتون بلیس است این نبود بیتابتر بر رفتن من جزعناکتر در رفتن من من رب الحسام از صاحب شمشیر برنده مصمم قد کند خب باز ربتالغورد کنایه از موصوف یعنی زن و رب الحسام کنایه از مرد یعنی رجل اما رب طلقورت ملیه مکانهو یعنی صاحب گوشواره که گوش زیبا داره یعنی زن زیبا رو رب الحسام المسمم صاحب شمشیر برنده یعنی مرد شجا پس زن زیباروی زنان زیباروی پشت سر من گریه کنتر و بیتابتر از مردان شجاع نبودند. با این نگاه کنید القرد ما یعلق فی شحمت العظم. قرد اونیه که آویخته میشه در نرمه گوش. مل حسام از سید القاطع. من مستمن الذی یصيب المفاصل و یقطعه شمشیری که به مفصل میخوره و وفت میکنه یعنی خیلی برنده اونو میگن مسلم قرد کنه یه قولو این بیت میگه لم کن المرعت الحسنا کنایی مصور نبود زن زیبا به عجزه علا فراقی بیتابتر بر فراق من منر رجل شجاب از مرد شجاب خود اینم مال این بیت پس که بیت اول گفت زن و مرد پشت سر من گریه کردند، موقع رفتن تو بیت دوم گفت زنها گریه کن تر از مردها نبودند یعنی یا مردها این زنها گریه می یا حتی مردها بیش از زنها می گریستن. حالا بعد میگه من رفتم ولی یه موقع آدم کوچ میکنه با دل خوش یه موقع کوچ میکنه با دل خونین میگه فلوکانه مابی من حبیبن من ان اذر تو ولاک من حبیبن موعممی میگه سیدی عارف میگه مابی با لو میگه ها میگه اگر به پس اگر به مابی ما بی آنچه که در من بود یعنی اونچه که تو دلم بود میگه من رفتم ولی به فرض آنچه در دل من بود من حبیب مغنعی از یک محبوب و معشوق قناعدار روبندار بود میگه اگر این ناجوان مردی که به من شد این بیوفایی که به من شد اگر از طریف طرف یک حبیب مغنه یعنی یک زن معشوق قناعدار روبندار چون اون زیبارویان صورت خود رو میپوشوندند که هر کسی اونها رو نبونه و از گزند آفتاب و آفات به دور باشه آن روبندارها زیبارویان بودند میگه اگر این کاری که با من شد این بیوفایی که در حق من شد از طرف یک معشوق زیبارویی بود از من به خودم عذر می دادم به اونم عذر می دادم. دلم نمی سخت بقول حافظ زار وعده خوبان یکی وفا نکن موجات روی این صنف ناز و و بی وفایی هست یعنی اگر این بفایی بی بفایی که به من شده از طرف یه زن بود اونم زن زیبارویی من دلم نمی‌سو عذر می‌دادم و لا ولی چه کنم چه خاکی به سرم کنم و که من حبیب مؤمنم ولی چه کنم که این از طرف یک دوست و حبیب و محبوبی بود که امامه به سر می‌گاش یعنی محب بود باز حبیب مغنه یعنی زن زیبارون حبیب معمم یعنی مرد. خب پس بنابراین ببینی چه حرفی زدی یعنی تو کاری با من کردی بیوفایی با من کردی که زنان میکنند با عاشق و من، محب به خودشون من تو رو دوست داشتم تو در حق من بیوفایی کردی اگر این رو معشوقی با من کرده بود دلم نمی سوخ. ولی چه کنم که تو این کار رو کردی خب بگی چه حرفی زده فلوکانه ما بیمن من حبیب مغنعی اذر تو من حبیب مؤمنی اونی که امامه به سر شد خب اینم گفت بعد چی میگه حالا گوش کن توی اون جلسه ای که شغلی کردن برای متنبی و سیف و هم با متنبی برخورد کرد که گفتم دوات رو بلند کرد و به طرف سر متنبی پرد کرد سیف دو این دوات رو که به طرف سر متنبی پرد کرد متنبی سرش شکست و اون کسانی که تو مجلس بودن خیلی دلشون خنک شد خندیدند سیف و دوله هم این شکل به اصلا اقدش رو خالی کرد اصابانیت رو خالی کرد متنبی هم تو اون جلسه گفتش که اگر تو دلت خونک میشه با اینکه سر ما شکسته بشه اشکالی نیست ما رازی. یعنی ما تو رو دوست داریم ما نبتیم دست رو دوست بلند کنیم. رفت اما سیف و دوله وقتی که این دوات رو پرد کرد مثل کسی که دیدید بازی میکنن یا چیزی به هم پرت میکنن وقتی پرت میکنه احساس میکنه که اون الان همونو برمیداره به طرف این میندازه وقتی پرت کرد زود قایم میشه سیفا هم همین کارو کرد اینو پرت کرد و پشت یک کس دیگری قایم شد که موادامت نبی الان اون دوات رو برداره و به طرف او پرت کنه همین رو ملاج قرار داده نگاه کنید میگه غما. پرد کرد به سوی ما ما رو زد رما وقتقا رمی بعدم ترسید و سنگر گرفت نسبت به زدن من زد و رفت قایم شد وقتقا اتقا یعنی پرهیز کرد از زدن من زد و رفت سنگر گرفت وقتقا رمی و مندونه ای با با با حالی است و حالان که مندون متقا، یعنی مندون ما و حالان که در مقابل اون چیزی که او ازش سنگر گرفت یعنی در مقابل زدن من هوند یک عشق و علاقه و دوستی هست این مندونه خبر مقدم هوند مقددم زد و رفت قایم شد در حالی که در مقابل اون چیزی که او میترسید یک عشق و ای هست اون عشق و ای در وجود من هست کاصر کفی و قوسی و عسهمی که میشکنه دست من و کمان من و تیر منو که بخوام به طرف او پرت کنم میگه اون حق نون نمک و نمیشناخت زد و بعدم فکر کرد من مثل خودشم رف قایم شد در حالی که در مقابل اینکه من بخوام بزنم او رو در مقابل آنچه که او ترسید یک عشق و علاقه و محبت و وفایی در منه که دست من و کمان من و تیر منو میشکنه اگه بخوام این کارو کنم. من مثل او نیستم چی گفت؟ گفت زد و ترسید من بزنمش در صورتی که در مقابل ترس او چی وجود داره؟ یک وفا عشق علاقه از من هست نون و نمک خوردیم اون نون و نمکه میشکنه دست من اگه بخوام به طرف او دراز کن یعنی اون حق دوستی یا نون و نمک سرش نمیشه فکر از زد منم میزنم نه من دستم میشکنه اگر بخوام به طرف کسی که باش نونه نمک خوردم چیزی پرت کنم. خیلی نشد. رما وقتا و رمید و مندون متقا اون کاسر کفی و قوسی و ازخومی این کف و قوس و ازهم که نظیرم دارن مفعول کاسر هستن. حالا اینجا دیگه نتیجه میگیره میگه چطور شد که این یه همچین فکری کرد زد و رفت خوایم شد فکر کرد تو هم میزنی میگه آخه کافر همه را به کیش خود پندارد میگه ازا سا المر المر یعنی الانسان میگه هنگامی که بد باشه کاری آدمی اگر کار انسان بد باشه ساعت زنونهو گمانهاش هم بد میشه کافر همه را به کیش خود بندارد ازا ساعت فعل المرعه ساعت زنونهو اگر گمان یک انسانی بد باشه آدم بد بین به همه بد بینه ساعت زنونهو گمانهاش بده به کسی خوشگمان کسی که خودش کار بد میکنه گمانش به دیگران هم بده. کافر همه را به کیش خود برد. ازا سا لنبر، ساع از و صد ما عطاد من توهمی، نی من توهم از برون یعتاد هو اونهاش من بیانی است و تصدیق میکنه این آدم صد دوت ساعته. وقتی یه نفر کاراش بده گمانهاش هم به دیگران بده بعدم تصدیق میکنه ما یعتادهو آنچه چرا که بهش عادت داره گمانهای بدی که بهش عادت داره همه رو تصدیق میکنه میگه بابا شاید اینطور نباش میگه نه نه نه همینه و صدقه ما یعتادهو من توهمن آنچه آن از توهم به ذهنش برسه آنچه که در مورد دیگران فکر میکنه اونها هم مثل خودش کافر میدونه این کافر همه را به کیش خود پندارد این پندار خودش رو هم تصدیق میکنه و حاضر نیست که بگه نه احتمال داره همچین چیزی نباشه یه نه همینه کافر همه را به کیش خود پندارد بعدم تصدیق میکنه این پندار خودش رو سفت و سرختم سر جاشمالی میسته و میگه که نه همین از خوده ایرازیم نیست ببینید. سیف و, و چی بهش گفت گفت من رفتم از سرزمین تو ولی محبوب رفتم مرد و زن پشت سرم گریه میکرد من رفتم تازه مردها پشت سر من یا مثل زنان گریه میکردند، یا بلکه بیشتر از زنان گریه میکرد بعد گفته تو یه نامردی و بیوفایی در حق من کردی که کارو و خلق و خوی زنان و زیبارویان است خصلت مردانه نیست اگر این کار رو یک زیباروی با من کرده بود دلم نمی صحت. اما چه کنم که تو مردی امامه به سر داری و چنین کردی بعد برگشت گفتش که زدی رفتی قایم شدی و فکرم کردی که منم الان همون کاری رو که تو کردی میکنم و من هم به طرف تو پرتاب میکنم چیزی رو زدی و رفتی قایم شدی فکر کردی منم میزنم در صورتی که در حالی که در مقابل زدن من اون چیزی که تو ازش ترسیدی یک نون و نمکی هست یک وفایی هست یک هوا عشق و علاقی هست که دست منو میشکنه اگه بخوام به طرف تو دراز کنم بعدم گفتش که چرا اینطوری کردی زدی و رفتی قایم شدی فکر کردی منم میزنم چون هر کسی که کار بدی میکنه این آدم در مورد دیگران هم فکر بد میکنه فکر میکنه دیگران هم مثل خودشن و صد بار هم اگر بگی بابا ممکنه اینطور نباشه قبول نمیکنه تصدیق میکنه اون چیزی رو که به ذهنش رسیده و توخم زده اون توهم غلطی که در مورد دیگران کرده و اونها رو هم مثل خودش دونسته اون توهم رو تصدیق میکنه و حاضر نیست اصلا و ابدا بپذیرد که ممکن است اشتباه کرده باشه چقدر زیبا هرچه خواست به زیف و دوله گفت بدون اینکه که بگید نامی از سیف دوله برده باشه اگر یکی از این حرفهایی که زده به اسم در مورد سیف دوله گفته بود مثلا گفته سیف و تو خیلی نامردی تو مثل خلق و خویت در بیوفایی مثل زنان عاشق پیشه میمونه اینطور گفته بود اگر هر کجا بود گردنشو سیف و دوله میزد اما ولی این شکلی که گفته میتونه انکارم کنه وقتی برگرده بیاد بگه تو بودیم نه ما داشتیم تو شیعر میگفتیم مگه رو گفتیم در عین حال هرکی هم به خونه میفهمه که منظورش تایی خودتون هم حرفشو زده هم ادب رو خد نکرده یعنی راه رو باز گذاشته که اگر برگشت بتونه کنار او باشه هم به امیر زمان خودش بد و بیرانه گفته هم دلشو خالی کرده خب این از خصوصیات تعریسه حالا نگاه کنید فعله نهو کنا صیف دولت اولا بالحبیب المعامم پس او کنایه کرده از صیف دولت در قسمت اول این ابيات با حبیب محمد محبوبی که امامه به سر داره ثم و بالقدر بعد او رو توصیف کرده به بیوفایی الازی بیوفایی که یده ید یا نهو یعنی منشیمت النساء میوفایی که ادعا دارد این از خلق و خوی زنان است یعنی معشوق ثم سملامهو بعد سپس اونو ملامت کرده سیفه دولار الان مبادهتهی بلعتبان مبادههی پیش دستی او رو ملامت کرده به اینکه پیش دستی کرده در دشمنی رما ثم رماه بلجوب بعدم گفته پیش دستی کرده تو زدن بعدم او رو رماه و اتهام زده به او متهم کرده او رو بلجوب به اینکه میترسه او رو متهم کرده به ترس چرا لانه یرمی و یتقر ریا بالاستار خلف غیره به اینکه این آدم میزنه بعد میره پنهان میشه پشت کسی دیگه لأنهو یرمی و یتقی رمیه میزنه و بعد هم میترسه از زدن طرف مقابل به اینکه او قایم میشه به خلف غیرهی ترهیز میکنه از رمیه طرف مقابل اینکه قایم میشه پنهان میشه خلف غیره در پشت کسی غیر خودش الا همه اینا رو گفت الا عن المتنبی می یعنی من با اینکه که متنبی لای وجازیه علی الشر به مثلی با اینکه گفته من متنبی هیچ موقع مقابله نمیکنم با او نسبت به این شرلی که با من انجام داد زدنی که با من انجام داد به مثل این اصلا و عبد لا لایزال و یحملو لهو بین جوانهی هی هود. زیرا این متنبی لایزال پیوسته هنوز یحملو لهو حمل میکنه برای او بین جوانهی در بین دنده های خودش یعنی توی دل خودش حمل میکنه هون یک عشقی رو علاقه ای رو که قدیما قدیمی است و نمک قدیمی که خورده که یکس رو کفهو و او و از خومهو و حاولن نزال که دست و کمان و تیر او رو میشکنه اگر حاولن تلاش کنه ان نزال برای جنگیدن با او. میگه چی؟ میگه که با اینکه که با اینکه متنبی مقابله نمی کنه با او نسبت به شری که انجام داده به مانند او یعنی یه شری بیرساند مثل شری که او رسانده اصلا چنین نمیکنه متنوی چرا چون متنوی هنوز در قلب خود حمل میکنه برای این آقا برای این محبوب عشق و دون و نمکی که قدیمی است و میشکند دست او کمان او و تیرهای او را هنگامی که او بخواد دست رازی کنه و تلاش کنه برای مقابله کردن هنوز اینطور نیست که بتونه این کار بکنه بعد اومده چه کرده؟ ثم وصفهو به انهو سعی ازن نه توصیف کرده او رو به اینکه این همیشه بدگمانه به دیگرانه به استقاری به دوستان خودش بدگمانه گمانه بد به این رو میکنه. چرا گمانه بد میکنه؟ لعنهو سعی الفهد زیرا این خودش بدکاره خودش بیوفاست فکر میکنه دیگران هم بیوفان خودش نامرده فکر میکنه دیگران هم نامردن لعن نهو سی کسی رو, رو و زنون خیلی وهم و گمان میکنه در مورد دیگران حتی لیزون تا جایی که گمان میکنه انن جمعی جمیعن مثلو فکر میکنه همه مردم به طور کل مثل خودشن بیوفا نامرد فکر میکنه همه مثل خودشن تیسو در کار بد کردن زدن و و نمک خوردن و نمکدان رو شکستن فکر میکنه همه مثل خودشن تیسو و ضعف الوفا و بیوفایی فکر میکنه همه مثل خودشن میگه فانزور. حالا خوب نگاه کد کیفن نال المتنبی من سیف دولت هازن نیلد چگونه متنبی رسیده است نسبت به سیف و دوله به این چه رسیده هازن نیل چگونه دسترسی پیدا کرده به سیف و به این حد درست رو هازن نیلد کل دهی نالت فان زلکیفا نال المتنبی من سیف دولت ها ز کله چجوری این همه تونستن سیف الدوله به دست بیاره این همه دیگه من غیر از اسمی اسم دیگه حرفو بدون اینکه از اسم سیف الدوله یه حرفشو اون سینشو فقط بگیره یه سینش هم جوری که اگر نام برده بود سیف الدوله با اون جوری برخورد میکرد که اصلاً نه. اما همه حرفو زده ادب رو هم زیده با نگذاشته راه برگشت رو هم باز گذاشته به هم خالی کرده ها همه اینها از هنر تعریزه خب اگر دقت کنید پنج بیت رو من برای شما از ابیات متنبی به طور ویژه خوندم و زیبا و خودش یک متون نظم و نصیست قشنگ در این حال کنایه‌های موصوف خوش بود و کلش هم کنایه تعریسی بود کل عبدات هازا این هازا یعنی خوزا هاش اسم فعل زاش مفعولش یعنی خوزا یعنی اینا رو بگیر نگار تا اینجا رو داشته باش فواهد کنایه تا اینجا که گفتیم داشته باش حالا می‌خوایم دوباره ببینیم یعنی در واقع نقطه سرخط تعریص تموم شده از فواید کنایه حالا یه دیگه بخوایم ببینیم اینو می نوشتن برای خاطر اینکه این, این مبحث جدای از مبحث بعد نقطه سرخط باشه بعد چی میگه باز از مشخصات کنایه و من او ذه میزات کنایته از تعبیر و ان به ما توسیق لآزان و, لا و سماع میگه از واضح ترین مشخصه های کنایه اینه و من میزات لی کنایه از تعبیر بیان کردن از قبیه قبیه یه چیزی قبیهی رو بیان کنی به ما توسیق. به چیزی که گوارا میشمارد شمارد سماش ها شد گوش ها بعدشون نمیاد گوش شنوندگان اونو میشنوه بعدشون نمیاد ولی اگر شما سریح بگید آه چه خواهد شد ادبی محض اصلا حاضر نیستشید گوینده اینو بشنه اصلا سریحش نهایت است نهایت بگید اصلا نمیتونی به جز کنایه بگی به جز کنایه نمیتونی. الان شما نگاه کنید مثلا توی امورات پزشکی، یه پزشک مخواد بپرسه مثلا شکم شما چهجور حالا کار میکنه یا مثلا فرض بفرمایید که توی آزمایشگاه ها مثلا فرض کن نمونه رو میده میگه این نمونه رو شما بیارید. یا نمونه میگه یا غیره اگر بیاد صریح بگه شما این کارو کنید و پزشک سوالاتی که میخواد بکنه یا توی مسائل احکام بالای منبر توی تلویزیون احکام نمیدونم فرض کن دهارت احکام نجاست احکام مسائل زناشویی غیره اینها رو همه رو دارن بیان میکنن به شکل کناری بیان اگر اینها رو بخوام سریح بیان بکنن دیگه اصلا نمیشه یک نفر هم نمیتونه تحمل شنیدن اینها رو بکنه کنایه به ما این رو میگه دیگه میگه حاضا و من میزا میزات از تعبیر و انرقبی اینجاها جاهایی که اصلا و عبدا اون شما نمیتونید به قول خودمون مستریحش رو بگید نگاه میکنه میگه آقا میگه آقا, آقا رفت تجدید و وضوع کنه نمیدونم یا دستش رو بشوره یا نمی هم ما داریم حسن کوی از کوچک تا بزرگ این حالو به کار میبریم و هیچ وقت سریح این حال نمیگیم خلاص شد؟ حاضر و من آوزه میزات الکنایتا ات تعبیر و انلقبیه به ما توسیق و و سماه و امثلت و ذالک کسیرتون جدا. مثال های این زیاد است. شما خودتون تو زندگی خودتون دارید از صبح تا شبین ها رو میبیند فلقرآن کریم و کلام عرب در قرآن کریم و کلام عرب هم فرابد و همسلت و ذالکه کسی در تون جدن فلقرآن و کلام ال... شما نگاه کنید ببین قرآن در رابطه با این که شما به قول خودمون قضای حاجت میگه کرده قضای حاجت پس کنایه است دیگه با قول خودمون آه؟ یعنی حاجتشو برامرده میرفته قضای حاجت خب یا مثلا فرزوفان میگه قضایتون منال قاعد قاعد یعنی اون گودال یعنی زمانی که شما از اون گودال بیرون اومدید تعبیر داره میکنه از این که رفتید و قضای حاجت کردید و, و خیلی مواردی و همسلت و ذالکه کسیدتون جدن به القرآن کریم و کلام درم نگاه کنید میگه انقدر این افراد نسبت به بردن بعضی از چیزها غرور داشتند که حتی حاضر نبودند زنان خودشون رو به نام نام ببرند فقط کانو لا یا عبرونه اما لا یحسن و ذکرهو لا بلکنایه فقط کانو این عربها لا یا عبروند تعبیر نمیکردن، اما لا یحسن و ذکر از چیزی که پیششون ذکرش به طور صریف پشنگ نبود نام نمی از او الا به کنایه مگر با کنا... کنایه می بردن ذکر نمیکرد. میگه خیلی همین حتی مثلا و کانول شدت نخوتهم و به خاطر شدت غرورشون، یکنون کنایه میکردن عن المرعته از زن خودشون از معشوق خودشون بالبیزته به تخم مرق و شاد و بره یا آهو آه؟ یا نخله مثل ما که توی شعر هامو سرو روان هست اونها نخله یعنی درخت بلند اینتوری تعوی میکد یا بیزه چون تخم مرق رنگش به گونه بوده که رنگ زیبا بوده آه. یعنی اونی که مثل تخم مرغ در رنگ زیباست یا مثل بره دوست است این طور تعبیر میکردن یا آهو یعنی حاضر نبودن نام ببرند. و کار شدت نخوته یکنون علم مرعت و وشب و من بدای کنایات از بدیترین زیباترین کنایه ها قولو و العرب الارب بعض اینجا یعنی یکی گفته یکی از این اراب خواست نگاه کنید میگه الا یا نخلتن الا یا نخلتن من ذات ارغن آهای ای نخل بلند ذات عرق ذات عرق اسم جاییست که ما تعبیر به سرف میکنم توی چه تعبیر به نخله کرد چون رو با نخل سرو ای نخله‌ی بلند ای درخت خرمای بلند ذات عرق منظورش از درخت خرمای ذات عرق که داشته میگفته بعدم میگه درود خدا و سلام خدا بر تو باد نخله رو که صدا نمی کنه و به او بگید ها درود و سلام نمیفرسته منظورش از این نخله اون معشوق بلند بالای خودشه که در ذات عرق زندگی میکرده گفته ای معشوق من که در ذات خستی. هستی علیکه و رحمت الله السلام و بر تو سلام و رحمت الهی باد علا یا نخلتن من ذات ارخ. من ذات صفت نخلتنه نخلتن منادای شبه مضافه میگه یا آل من لا یعلم یعنی منادای مسعوده به خاطر همین مسلوب شده. مثل دعای کنه آخرش میگه یا آل من لا یعلم لا یعلم و صفت آل من اینجا یا نخلتاً من ذاته من ذاته جار و مشروب بعد از نکره صفت میگه فعل نهو کناب نخلته این آدم کنایه کرده با نخل انلمر اتلتی یوهب بها از اون زنی که بهش علاقمند بوده محشور بوده. فرین نخو کنا یا کنلا به نخلت انلمر اتلتی یوهب بها ذات و ارق پایین نگاه کنید موضعان بلوادیته محلیست در جزیرت العرب بادیه و خوبه مکان احرام اهل العراق محل که به طرف مکه میان برای حج به این ذات عرق که میرسن احرام میبندند و به طرف خانه خدا میرند. اینجا ذات عرق اینها محرم میشن. محل احرام این پس الان یا پس کنایه تو زندگی ما وجود دارد. داریم باید زندگی رو. حتی جاهایی هست که اگر کنایه نباشد ما اصلا نمیتونیم حرف بزنیم لال میمونیم. اون جاهاییست که اگر انسان به طور سریع مطلب رو بگه هیچ گوشی حاضر به شنیدن او نیست همه میگن اه اح بی احمق ببین چجور حرف میزنیم میگه و لعله مقدار و شاید این مقدار کافن فی بیانه کفایت کنه در بیان خسای سلکنای ویژگی کنایه رو این مقدار که بیان کردیم امتیازات و ویژگی کنایه رو کافی باشه و لعل مقدار المقداره فی بیان بیانی خسای و اظهار ما تزمنده و در ظاهر کردن آنچه که کنایه دربر دارد من بلاغتن و جماع آنچه که دربر دارد از بلاغت زیبایی و جمال آن و روانی کلام بلاغت شیبایی جمال زیبایی آنچه از شیوایی و زیبایی کلام این کنایه دربر گرفته برای اظهار اون و بیان خصایص بود همین مقدار کافی باشه لعله از مقدار فی بیان خصایص کنایت و اظهار از هجای بیاده و فی کافن فی بیانه و کافن فی اظهاره و کفایت کنه در ظاهر کردن آنچه که در کنایه هست از بلاغت و زیبایی همین مقدار کفایت کنه پس امتیازات کنایه امتیازات کمی نیست خب درس ما به شکل کامل تمام شد از اینجا به بعد آنچه که خوندیم رو دوره میکنی یعنی یک دوره کاملی و مقطع جانی این در واقع این اثر علم بیان در تهدیه معانی، یعنی تأثیری که علم بیان می‌ذاره در رساندن معانی و مفاهیمی که ما میخواهیم به مخاطب بیان کنیم. نگاه کنید ما آمدیم علم بیان رو این گفتیم که علم بیان تشکیل شد یعنی اون که ما بیان کردیم یک از تشبیه انواع اقسام ادراز بعد اومدیم وارد مجاز شدیم مجاز رو به لفظی و عقلی تقسیم کردیم بعد مجاز لفظی رو به دو دسته تقسیم کردیم مجاز لفظی رو یکی مجازه استعاره که علاقش مشابهت یکی مجاز مرسل که علاقش غیر مشابه. بعد هر کدوم از این دو را به دو دسته تقسیم کردیم یکی مفرد و دیگری مرکب مثلا استاره مرکب می شود استاره بعد اومدیم توی مجاز مرسل هم مجاز مرسل رو به دو دسته مفرد و مرکب تقسیم کردیم که مرکبش رو تو حاشی کن بعد مجاز لفظی تموم شد وارد مجاز عقلی شدیم که مجاز در اسناد، مجاز حکمی اسناد مجازی هم بهش میگفتن هم خوندیم بعد از این بحث تشبیه و مجاز به طور مطلق وارد کنایه شدیم کنایه رو خوندیم کنایه رو تقسیم کردیم به سه دسته کنایه اساسی به طور ذاتی تقسیم شد به کنایه صفت، موصوف و کنایه نسبت بعد اومدیم و گفتیم البته ما میتونیم کنایه رو با لحاظ های مختلف تقسیمات دیگری هم بکنیم به تلویح و ایما و اشاره تقسیم کردیم بعد اومدیم و گفتیم کنایه به طور مطلق دو دسته هم میتونه باشه کنایه تعریزی و غیر تعریزی این کنایات رو هم تقسیماتش رو بیان کردیم علم بیان تمام شد حالا اینجا ما میخوایم مبحث خودمون رو دوره کنیم میایم ببینید میگیم که علم بیان چه تأثیری داره میگه علم بیان به ما قدرت میده که بتوانیم یک معنا و مفهوم رو به شکلهای مختلفی بیان کنیم دست ما رو باز میذاره همون جز که من گفتم توسعه سخن دست ما رو باز میذاره میتونیم به قول خودمون یک معنا و مفهوم رو به چندین شکل بیان کنیم مثلا فرض کنیم ما میخوایم بگیم زید آدم کریمیه آدم بخشندهیه خب یک شکلش اینه که به طور سریع بگید هیچی هم از تشبیه و مجاز و کنایه توش نباشیم زید کریمه بخشنده است بخشش و کرم در زید وجود دارد این خوب یک شکلی بعد شما میتونید بیایید همین رو به شکل چی بگید؟ بگید به شکل تشبیح بگید حالا که میخوای به شکل تشبیه بگی میتونی از انواع و اقسام تشبیه استفاده کنی. شده نه؟ مثلا تشبیه بلیغ بگی، تشبیه مرسل مفصل بگی، تشبیه مرسل مجمل بگی، تشبیه معکد مفصل بگی، میتونی تشبیه رو به شکل تشبیه زمینی بگی، میتونی تشبیه مرشه بگی، نه ما هر شکلی که بخوای میتونی از تشبیه استفاده کنی. یعنی میتونی تشبیه رو تقویتش کنی، از جمله مراشه‌ای تقویتش کنی، یعنی تشبیه بلیغ بگی. میتونی بیای تشبیه رو تشبیه تمثیلی بگی یعنی هيئت درست کنی بگی میتونی از این تشبیه تشبیه مقلوب بگی بیشتر تشبیه و تقویتش کنی. تشبیه مقلوب بگی. یعنی چقدر میتونی همین یه دونه مورد رو به این احوال. بعد از تشبیه میای بالاتر می مبالغه بیشتر کنیم. میای توی استعارها این رو به انواع اقصام شکلهای استعاره میگی مصرحه مکنیه، تمثیریه بعد مرشهه، مجرده، مطلقه میای بیان میکنی بعد میای همین رو به شکل مجاز میگی مجاز مرسل حالا مفرد میگی، مرکب میگی بعد میای همین رو به شکل مجاز عقلی میگی همین که زید کریمه زیت بخشنده بعد میای همین رو به شکل کنایه میگی حالا کنایه صفت میگی موصوف میگی کنایه نسبت میگی کنایه تعریسی میگی ببین چقدر دست تو بازه آیا همه اینها رو برای یه نفر بکن نه هر کدومش مثل یک داروئه برای یه نفر یه جای شما باید همین که زیت بخشنده است اینو به شکل کنایه بگی از کنایه استفاده یه جای باید این رو مبالغه کنی میای از شکل تشمیه بلیغ استفاده میکنی بخواهی خیلی بیشتر مبالغه کنی از استعاره استفاده بکنی یه جام بخواهی این رو به شکل مجاز مرسل بگی از مرسل استفاده مجاز عقلی بگی یعنی در واقع اینها یک سری فوت و است که در دست شماست که شما با اینها میتونی کلامتو مطابق مقتضای حال مخاطب کلامتو مطابق مقتضای حاله مخاطب فیلی زیباست یعنی در واقع علم بیان به شما قدرت بیان میده که میتونی یه معنا و مفهوم رو به صد شکل بگی و آیا این صد شکل برابرن در خصوصیات؟ نه اصلا هر کدومش مال جاییه هر یک از این کلام جای مخصوص خودش رو داره خلا تو اگر تشخیص دادی که هر کنون رو کجا به کار ببری میشه بلاغت یادتونه گفتیم گفتیم بلاغت کلام بلاغت کلام صحیح و فسیحه اول دست گفتیم اولته بلاغت کلام صحیح و فسیحه مطابق مقتضای حال مخاطب کلام صحیح و فصیح یعنی همینا های هم کلام خوندیم تا اینجا ام با اینا همه کلام صحیح و اما مطابقتشون با مقتضای حال ترم بعده درس ترم بعد ماست که میگیم این کلامهای های صحیح و فصیح کجا مطابقه با چی میشن مطابقت با مقتضای حال خودش. پس تو اگر به کلام صحیح و فسیحی رو که یاد گرفتی مطابق با مقتظای حال مخاطب به کار ببری میشی فسیح میشی ولیغ آ پس بنابراین علم بیان ما تا اینجا که خوندیم به ما انواع سخن رو یاد میده دست ما رو باز میکنه الان ما یاد گرفتیم میدونیم استاره تمثیلی چیه میدونیم مجاز مرسل چیه میدونیم مجاز عقلی چیه میدونیم کنایه و انواع اقسامش چیه میدونیم تشبیه زمینی چیه همه هم؟ اینا رو میدونیم اما اینکه اینها هر کدوم جاش کجاست سر جاش به کار برده بشه اون میشه بلاغت مثل پزشکی میمونه که اول ترم برادن گفتن یه پزشک اول باید همه داروها رو بشناسه همه داروها رو میشناسه خواصشونو میدونه اما این دارو تشخیص میده خواصش رو باید مخاطبش هم که اون بیماره اونم بشناسه که چه بیماری داره چطور از کدام یک از این داروها مطابقه حالش که بهش بده اگر خوب تشخیص داد داروی مناسب رو به بیماری که مناسب باوز با داد با همون نسخه اول درمانش میکنه ازا بعضیا میبینید یک جایی حرف میزنه با همون بقول خودمون کلام اولش همه آنچه که باید بگه رو اینجاست که نگاه کنید بخونید. اثر و علم البیان فی تعدیت معاد ظہر لکه ظاهر شد برای تو من دراست علم البیان از این خواندن علم بیان برای شما ظاهر شد ان معن واحد اینکه یه معنای واحد حالا یه معنای واحد مثل شجاعت مثل کرم جود مثل عفا ان معنا واحدن یستطاع و عداؤه به اصالی و عدت یک معنای واحد یستطاع استطاعت داریم ما مقدور است یستطاعت یعنی مقدور است یک معنای واحد ممکن است مقدور است عدای آن بیان آن به اصالی و عدت و و مختلفت به اصلوب های چندگانه عده متعدد و راه های مختلف میگه از این درس علم بیان تو شما خوندید اینو رو به دست میارید که یک معنای واحد مثل کرم مثل شجاعت ممکن است که شما اون رو به شکل های مختلف و راه گوناگون بیان کنید اینو رو دیگه میبینی که بله کرم رو میشه به چندین شکل بگید یعنی از اول کتاب بردهید همه اصلاح هایی که ما خوندیم کرم رو توی اون ببینید شوهرها گفتن زهر الله که برای تو واضح شد از خواندن علم بیان این مطلب این انه فایل زهر است تعویل یا مستر میره فایل زهر است ان معنی واحدن این که یک معنای واحد مثل کرم یستتاو مقدور می باشد، در استطاعت می باشد بیانان ادایان با سبک های متعدد و راههای مختلف و انهو اطور جای انه قبل زاغر شد برای شما که انهو که این معنای واحد قد و فی صورت رائعت منصورت تشبیه. این معنای واحد گاهی اوقات قرار داده میشه در یک شکل زیبایی از الباهه تشبیهی گویا این در یکی از معا شکل‌های زیبای تشبیهی این معنای واحد بیان میشه انبهو قد یوزا فی صورت رائعه من صوب این معنای واحد گاه قرار داده میشه در شکلی زیبا از اشکال و صور اون صورتهای تشبیهی که ما آوردید در یکی از اونها مثلا در تشبیه زمینی می در تشبیه تمثیلی میاد، در تشبیه بلیغ میاد، یکی از اشکال تشبیل میاد، اول استعارته یا یکی از صورتهای زیبای استعاره واقع میشه، استعاره مصرحه مکنیه، تمثیلیه، مرشحه مجرده، مطلبه و انواع و اقسام استعاره. عامل مجاز مرسل یا در یکی از اشکال مجاز مرسل میاد این همه علاقه داشت مجاز مرسل یکی از اشکال مجاز مرسل اول عقلی یا به یکی از اشکال مجاز عقلی و اون 6 تا علاقه ای که گفتیم سببیت مکانیت زمانیت مصدریت واقعیت مقولیت با مجاز عقلی و اشکال اول کنایه یا نه یکی از اشکال کنایه اومده کنایه صفت موصوف نسبت تعریضی غیر تعریضی پس ببینید این معنای واحد قرار داده شده در شکلی زیبا از اشکال تشبیه یا استاره یا مجاز مرسل یا عقلی یا این اینو علم بیان به ما یاد به ما یاد داد که یه معنای واحد ممکن است بیان بشه به های متعدد و راه‌های مختلف و اینکه این معنای واحد ممکن است در شکلی از اشکال تشبیه بیاد در شکلی از اشکال استعاره بیاد مجاز مرسل مجاز عقلی و کنایه چیزایی که ما حالا کدوم شکل مناسب است برای چه کسی اون دیگه میشه مطابق مقتضای حال قسم دومه علاقت فعلا ما ملات کار رو میدونیم یعنی میدونیم که کلام صحیح و فسی کدام است کلامی است که ولی یکی از این اشکار باشه شد اما اینکه مطابق مقتضای حال هست یا نیست اونجای دیگه حالا نگاه کنید بیا موقع ممکنه اصلا این معنای واحد هیچ کدوم از این صورت‌ها رو نداشته باشه یعنی اصلا مثلا مجاز مرسل هرخی کنایه تشبیل چینا شد سریع باشه اون خودش یه قسمه قسمه اصلیست تصریح شده و حقیقت بیان شده م? فقط یصف و شاعر و انسانن بلکرمه حالا از اینجا شروع میکنه شکلهای مختلف کرم رو میگه میگه فقط یصف و شاعر و انسانن بلکرم شاعر انسان رو، این شاعری انسان رو، این شاعر انسان رو انسانی رو توصیف کرده به کرم، به جود و یقول اینطور میگه. پس به یقین توصیف کرده است. این شاعر ما انسانی رو، شخصی رو به کرم پس اینطور گفته. میگه یوریدول الملوکو مدا جعفرن منظور جعفر برمکی است. ولیس <تصفيق> نسن او نکمایس نو. ولیس به اوسعهم فلقناه ولا که لمعروفه اوسع حقیقت کو میگه یرید الملوک الملوک جمع ملک الفلام هم داره جمع هم هست یعنی همه پادشاهان هم. الفلام جنس دیگه میگه تمامی پادشاهان و بزرگان یوریدو قصد میکنند مدا جعفره مدا یعنی اون قایت اون بلندای جعفر برمکی یوریدو یعنی یطلبو میگه همه این بزرگان و پادشاهان قصدشون اینه که به اون جایگاه بلند جعفر برمکی برسند خب. میگه همه اونها دوست دارند بشن جعفر برمکی همه اونها دوست دارند به جایگاه بلند جعفر برمکی دست یابند اما ولای نونه کما یسنع یعنی سن که صنعی ای. این کما ما مستری مصدری است مقبول مطلق به نیابت یعنی سن که صنعی اما ولایس نونه ولی انجام نمیدان انجام دادنی مثل انجام دادن او آه شکل کارشون مثل شکل کار آقای جعفر برمکی نیست همشون دوست دارند که جای جعفر برمکی باشن جایگاه مدا جایگاه جعفر برمکی رو پیدا کنن اما کاری که جعفر برمکی می‌کنه اینا نمی‌کنن هم؟ همشون دوست دارند جای جعفر برمکی باشن اما ولایس نمون کمایس و انجام نمیدن کاری که جعفر برمکی انجام میده خب ویلنت ها شو این یه سوال اینجا پیش میاد ولیسا میگه خب ممکنه که جعفر برمکی خیلی وضعش خوبه پول زیادی داره کرم زیادی میکنه اینا دوست دارن بشن جعفر برمکی و اگر انجام نمیدن کاری که جعفر برمکی میکنه این به خاطر اینه که نمیتونن این کارو بکنن جعفر برمکی جوری دستش بازه که میتونه هر داد و دهشی بکنه اما اینها نمیتونن این داد و دهش رو بکنن شاید اینه میگه نه نه نه نه اشتباه نکنید این بلعیسه استیناف بیانیه یعنی مبادر اشتباه کنید فکر کنید جعفر برمکی خیلی ورزش خوبه پس میتونه کرم وجود زیاد کنه این ملوک دیگه دستشون بسته است اینا نمیتونن نه نه نه اصلا و به اوسعه هم لیسه اسمش میخوره به جعفر و به اوسعه هم هم میخوره به ملوک و به به اوسعه هم فلقنا. دنا یعنی ثروت. و یادتون باشه جعفر برمکی دستش بازتر نیست اصلا این بابای زایدست داره تحکیب این جعفر برمکی اصلا وسیعتر نیست از ملوک در ثروت این نیستش که جعفر برمکی مر... ثروتش از این ملوک بیشتر باشه یعنی یا مثل اونها ثروتمنده یا حتی از اونها کمتر داره جعفر برمکی ولیس به اوسه هندلغنو میگن چطور شده که جعفر برمکی شده این جعفر برمکی همه دارن میگن میگن میگن اما دیگران نشدن اگر این دستش بازتر نیست جیبش در نیست پس چرا این شد جعفر برمکی دیگران نشدن توضیح میدیم ولیکن کرد ولی ولی یادتون باشه ولیکن معروفهو او یعنی اوسعو من معروف هم معروف یعنی عطا عطا و کرم جعفر برمکی بیشتر از عطا و کرم اونهاست نه ثروتش این نیستش که ثروت جعفر برمکی بیشتر از بادشاهان و دیگر عمراء باشه بلکه عطا و کرم او وسعت دارد نسبت به دیگران جودش بیشتره خلق و خوی کرمش بیشتره نه دستش بازتره ببینید این الان تا بیت گفت هیچی توش نیست نه تشبیه توشه نه مجاز توشه نه کنایه توشه هیچ چی نیست گفت همه پادشاه دلشون میخواد جای جعفر برمکی بشینه ولی کاری که جعفر برمکی میکنه اونها نمیکنه بعد این سوال پیش میاد جواب سوال ذهنی رو میدیگه استیناف بیانی که خب شاید جعفر برمکی اینقدر پول داره میتونه اونا نمیتونن گفت نه نه پول جعفر برمکی ثروت جعفر برمکی بیشتر از اونها نیست ولی داد و دهشش بیشتر از اونهاست عطا و کرمش بیشتر از اونهاست یرید الملکو مدا جعفرن و لا یسنو نکمایسنو و لیسا بأوسهم بالغنا و لاکن ما معروفه اوسا پس این به اول این به اول و دوم این الان شاعر ما مدح کرد جعفر برمکی رو به کرم و از هیچ اسلوبی استفاده نکرد و به طور حقیقی و سریع کن و شخصی رو که جعفر برمکی است به کرم مدح کرد خوب حالا ما میبینیم دیگرانم میان مده میکنن به کرم همین رو میگن مده به کرم میکنن اما به شکل اینطور طور حقیقی و به قول خودمون سریع نمیگن یکی از تشبیه استفاده میکنه یکی از مجاز استفاده میکنه یکی از کنایه استفاده میکنه اما اقسام خواهیم خون پس این شکل اول توصیف به کرم بدون آنکه از اصولوب و طریقه از اسالیب و طرق بیان که خوندیم استفاده شده باشه حقیقت و سریع یوری دلملوک و جعفرن ولایس نعون کما یسنع و لیس بوسعهم فلبنا و لکن معروفه اوسع یعنی لکن معروفه او من معروفه هم. کرمش عطاش عظمت بیشتری داره نسبت به اونها نه اینکه ثروتش میگه نگاه کنید و هازه کلامون بلیغ این کلام کلام بسیار بلیغی شیواست دشنگی و ااظا کلامون بلیغٌ جدا کلامی بسیار زیباست جدا مع انه لم یُقصد فیه الا او او مجازن تشبیه او مجازن. ما رو نوشته و هیچ قصدی روی تشبیه و مجاز نشده نه کنایه هیچ ااظا کلامون بلیغٌ جدا مع انه لم یُقصد فیه با ان قصد نشده در او الا تشبیهن قصد تشمیل شده باشه او مجازن او کنایتنی سریحه سریح این یک قسم درست شد از اقسامی که شما دارید میخوایم با هم بخونیم دوره کنیم این قسم اول که سریح بود اما نگاه کنید میگه وقت وصف شاعر فیه مملوحه تو اینجا شاعر ممدوح خودش رو توصیف کرده به کرم به طور سریع گفته دیگه و هازا کلامون بلیغون جدن من اندهو لم فیهه در این کلام الى تشبیه مجاز وقد وصف شاعر رو زیرا شاعر توصیف کرده وقد وصف شاعر رو فیهه در این کلام او جعفر برمکی رو ممدوع خودشو توصیف کرده به این کرم توصیفش کرده به اینکه اون کرم داره درست شد و انل الملوکه یوریدون و گفته که پادشاهان فست میکنن ان یبلغو منزلته همه پادشاهان میخوان به جایگاه بلند او برسن ولیکن لا یشترون الحمد ولی این پادشاهان نمیخرند حمد دیگران را نمیخرند حمد دیگران را یعنی باید یه چیزی به دیگران بدن با همد از اونها بگیرند یعنی با کرم بکنن تا دیگران بهشون بگن تو چقدر بزرگی تو چقدر عظیمی اگه تو نبودی ما میمردیم آن متشون کنندن. و که نهم ولی این پادشاه ها لاش ترون همد یعنی به مال هم اینها نمیان همد مردم رو سنای مردم رو بخرند با مالی که میدهند یعنی با عاط و کردمشون با حس بشن مردم مشون کنند اینها این کارو نمیکنن کم همانطور که آقای جعفر برمکی میکنه جعفر برمکی دست مردم رو میگیره مردمم نسبت به او بگید بهبه و چهچه میگن، مردمم نسبت به او متح و کرم میکنند پادشاهان دیگه چنین نمیکنند دست دهنده ندارند دیگران هم بهبه و چهچه براشون نمیگند ولاکنهم نهم یشترون هم ولی این پادشاهان و صنای دیگران رو نمیخرند با مال خودشون با عطا و کرم کما یفعلو مع انهو با اینکه این آقای جعفر برمکی مع انهو لیس به عقنا منهم این جعفر برمکی ثروتمندتر از این پادشاهان نیست ولا به اکثر مالن و مال و منالش هم بیشتر از اونها نیست پس چیش بیشتر از اونهاست داد و دهشش ببینید این الان کاملا شعر رو بیان کرد این یه کلام بلیغه هاذا کلامون بلیغ جداً، مع انه لم يفسد بينه لا تشبیه ولا ولی توش تشبیه و مجاز و کنایه چیزی نیست. چون شاعر ما وصف شاعر و سفر شاعر فیه ممدوحا خوب بلکرم، شاعر ما ممدوح خودش جعفر برمکی رو توصیف کرده به اینکه کرم دارد و اینکه و ان الملوک و اینکه ملوک یریدون ان یبلغو منزلته درست شد؟ و این که پادشاه ها میخوان برسن به جایگاه رو، ولکن نهم نه لایشترول الحمد بالمال کما یفعل ولی این پادشاه ها نمیان حمد و ثنای دیگران رو با داد و دهشی که بکنن به دست بیارن اصلا این کارو نمیکنن. داد و دهش نمیکنن، دیگرانم متشون نمیکنن. ولی آقای جعفر برمکی کما و جعفر برمکی این کارو میکنه، دیگرانم هم همه براش به و جهزن. دستش بازتره. پولش بیشتره که میتونه بده میگه نه مع و لیس به اقنا هم جعفر برمکی غنیتر از اینها نیست ولا به اکثر مالا و از اینها هم مالش بیشتر نیست پس چیش بیشتره ثروتش بیشتره نه مالش بیشتره نه بلکه داد و دهشش بیشتره باعث شده که بیشتر او رو مد کن این صورت اول که سریح چیزی نیست اما مطابق مقتضای حال آورده و بیان از این وقت یعمد الشاعر شاعر شاعر ما قصد میکنه همین کرم رو نسبت به کسی و به شکل دیگری میگه صور مختلف علم بیان رو که با هم خوندیم شروع میکنه به بیان کردن حالا ما یکی یکی یکی یک میخانیم دوره میکنیم که انشاءالله جلسه بعدمون کل مباحثی رو که خوندیم و اثر علم بیان و یه بندی کامل رو به دست میاریم انشالله شما هم تیتروار نگاه میکنید. این درس آینده ما تمام مباحث گذشته رو از انواع تشبیه و مجاز و کنایه برای ما دوره میکنه. انشالله تو جلسه بعد برای شما خواهم خوند و به طور کل مبحث ما تمام خواهد شد. همه تون انشالله که در سهت و سلامت باشید. و همه تونو به خداوند صبحان ویس برم و و معید باشید خدا نگهدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.